با درود خدمت بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان و با سپاس از مسئولین و مجریان محترم و عزیز تلویزیون که به من فرصت دادن تا دا چند بخشی در مورد زندگی کسوی تحت عنوان گذری و زندگی کستوی سخن بکن صد احمد حکمابادی که بعد بعدها اسم خودش رو کَسری کرد در روز چهارشنبه هشتم م مهر ماه 1269 در کوی حکماوار و یا حکماباد تبریز به دنیا اومد حالا من دو تا مطلب در این جزوهتون را حضرت خواهم کرد این که در 8م مهر ماه 1269 تصادفا مصادف میشه با روزهای گرم جنبش تنباکو بنابراین این مارت حتی از تولدش هم البته به صورت تصادفی کاملا تصادفی زندگانیش در جنبش و دوش به سر برده در کوی حکماباد یا حکماوار برای اینکه بینندگان متوجه بشن در واشه‌ی حکماوار در زبان ترکی آسری به معنای سرزمینی است که در اونجا سبزی میکاران و تصادفاً همین حکماوار سبزیکارن مردمش و مقدار زیاد یا سبزی مردم تبریز رو میدن لاقل تا اون موقع که من در اون طرفا بودم در تبریز بودم میدادند گروه دیگه معتقدند که حکماباد رو به وسیله قازان خان پادشاه آخرین پادشاه مغول که مرکزش تبریز بود چون این محله را ایشون ساختند ترسیس کردن به همین دلیل حکماباد میگن و خود کسری در زندگانی خودش به هر دو تا اشاره کرد است این برای توضیح بیشتر و هر را تکرار میکنم روز چهارشنبه هشتم م مهر ماه 1269 در محله حکماواش یا حکماباد تبریز متولد شد و روز ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 ماه 1324 به همراهی مرشید خودش به نام حد داد در شعبه هفت بازپرسی دادسرای تهران در حین بازپرسی به دست سید حسن و سید علی محمد امامی به نه دیگه به قدر رسید حضورتون عدلی باز هم خواهم رسید جایگاهیست که در اون جایگاه شرف و حیثیت و شخصیت انسان ها و جان انسان ها باید در ام امنیت باشد و این قتلی که در آن روز در دادگستری و در آن بازپرسی در آن شعبه بازپرسی شعبه هفت بود و بازپرس هم بلیغ بود به نامش انجام گرفت قتل معمولی نبود ما در فرصت های بعدی وقتی به بخش قتل که از رسیدیم در این باره مفصلا صحبت خواهیم کرد ولی در این مورد من مجمورم چند کلمه بگم این قتل با مثلا از قبل تعین شده با دسیسه که از قبل تعین شده بود به وسیله گروه های فراوانی از جمله حکومتیان چرا میگرز نکنم حکومتیان برای اینکه اون روز در, در عدلیگر رو براخت کرده بودن به قول معروف محاصره کرده بود خودیش ولی با وجود این دو تا نظامی در توی قاتلان و کشندگان کسری وجود داشت حال نظامی بودن یا لباس نظامی توشیده بودن هرگز روشن نشد برای این که محاکمه قاتلان کسری هیچ وقت روشن نگردید و به همین دلیل مختصفانه در آن تاریخ یکی از بزرگترین و شریفترین انسانهای کشور ما رو کشتند چرا کشتند به گناه عقیده به گناه بیان و به گناه انتقاد کشتند این مردم چه کسی کرد خب بدون شک متوجه هستیم و باز خواهیم دید به دستور روحانیان از همون بالا، بالای بالا از همون نجف دستور قتل چنین کسی رو دادند و بعد در داخل مملکتم کشته شدن و خون ناحق این مرد هدر رفت و هر حال انسان خود ای بود که از همان ابتدای زندگیش فقر و ستم اجتماعی رو با رگ و پوست و روح حساس خودش لمس کرده بود به اعتقاد برده اکس العمل همین زندگی مشقتبار دوران کودکی و نوجوانی او بود که در او روحی سرکش و حساس و منتقد آورد و او را واداش که در دورهای بعدی حیاتش همیشه با ستم و ستمگر و فساد و فاسد و خرافات نبرد کند و یک تنه به جدال خرافات رفت و پلیدی و جامعه نمی پسندید مبارزه کرد یک تنه مبارزه کرد کسروی فریادش رو بر علیه حتی حکومتیان هم بلند کرده بود باز خواهم رسید و بالاخره جان عزیزش رو در این راه هسته است تا کسوی تا با پس دم حیاتش با بدی ها در جدال بود و با نیکی ها همراه تمام زندگانیش در این دو خلاصه شده بود و ای انسان پاک باخته بود که از زندگانی هر داشت در راه آرمان ها طبق اخلاص قرار داد و راستی که او از دار و ندار خود به جز قلم و کلام چیز دیگری نداشت و همیشه با مصیبت فقر و تنگ دستی و بیپولی دست بگریمون بود در بارش گفتند یکی از کسانی که در قتل او از خانوادش رفته بود در داخل خانش براش لباس بیاره تمام لباسهای کسوی و موشی او به وسیله گلوله ها و به وسیله چاغوها چاغوهای جلادان تیکه تیکه شده بود این باد بگو ایش کیرا گفتینارو به هر حال در مورد اینکه واقعا در فقر زندگی میکرد می, می نویسند که در هنگام مرگ وقتی پیراهن او دریده شد و ما به منزل ایشان رفتیم تا پیراهن دیگری بیاوریم و بر پیکر ایشان بپوشانیم پیراهنی پیدا نکردیم خب میتونیم بگیم که اون کسی که رفته اون تو پیرهان پیدا نکرده ولی واقعا کسوی نه بدون مقام بود نه بدون مال پست بود نه بدون بال لذت های زندگانی غیر از مسائل انتقادیش بود تمام عمرش در مبارزه میگذشت و گذشت کسوی را به همراه موشیاش در روز روشن در اهمترین مکان کشور یعنی ادلیه آنجا که عرض کردم زامن حفظ جان و مال و شرف انسان هاست با توطعه و دسیسه ای به گناه عقیده کشتند و سپس بر خاطری این جنایت و گرد فراموشی پاشیدند گرد فراموشی دارم ارز میکنم بر اینکه از بالا تا پایین همه از مرگ کسوی البته آنان که در آن تاریخ دستشون در کار بود مطلع بودن ولی نگذاشتند کسی این مرد بزرگ را ازش تایید بکنه نقد مثبت بنویسه کسوی خونش به هوا رفت تا روزی که البته انقلابی شد گروهی روشانفکر در خارج از ایران آمدند و در آنجا قلم آزاد بود تونستند بنویسند بزرگان زیادی نوشتند در این تاریخ در این مدت چهل ساله و اینم در کنارشتون عرض کنم که در عوض در داخل مملکتم همون گروهی که بر کرسی قدرت نشستند اونا باز بیشتر از قبل شروع کردن به زدن کسرمی به تعیید قتلهاشون جنایتهاشون این بود زندگی کسرمی پس از کشنه حتی از دادن یک وجب زمین خدا نیز برای دفنشان مزایقه کردند هر دو جنازه مردم متسوب و نادان به طور محرمانه در امامزاده قاسم شمیران دفن کردند به قول یک شاهد عینی ابتدا گودالی عمیق و اندازه دو جسد کردند آنگاه می نویسد که با همان بدنهای پاره پاره و خونین و سر و صورت شکافته در امتداد هم در اون گودال قرار دادند به طوری که صورت متلاشی شده کسروی و حد پور به طرف هم قرار داشت گویی به چشم و چهره هم نگاه می کردند و بنده اضافه می کنم قوی از یکدیگر سوال سؤال می کردند چه برما گذشته؟ چه بر این مملکت گذشته اینان چرا این کار میکنند اینان چرا میکشند اینان مخالفانشون رو چرا میکشند اینان مگر نه این است که انسان آزاد خلق شده آزادانه باید کلام بگه کاری نکرده بود کسری کسری انتقاد کرده بود گذنیم البته قصد بنده از گفتن این مطالب بررسی و بر گفتار کامل زندگی کستوی نیست که برای هیچ وقت تموم نخواهد شد کستوی کستوی زودون از که کارهای زیادی کرده خواهم هم گفت افتاد جل بیشتر کتاب نمیشته بنابراین هر کدوم از اینا رو ما بخواهیم بررسی کنیم هرگز به پایان نرسید نخواهیم رسید. بحث بنده قصد بنده در این گفتار نسبتا مختصری است از زندگی کسدوی که تا گرامی درامی چه بر ما گذشته همون کسایی که قاتل کسد بعد از کسدوی کشدارهای زیادی کردن چند نفر رو کشتند هر دفع که کشتند به وسیله ملایان به وسیله روحانیان به وسیله آخوندان اجازه داده نشد تا حوان کشتارشون رو پس بدند و آزادانه در این مندکت گشتند به هر حال برگردیم به کسدوی طول عمر کسدوی 55 سال و شش ماه بود یک سال قبل از مرگش خاطرات 40 سال اولیه حیاتش را در کتاب تحت انگان زندگانی من در سه قسمت برشته تحویر کشیده است البته کلیه مطالعاتی که تا امروز به وسیله پژوهشگران در باره کسوی انجام میگیره با استفاده از همین کتاب است به این دلیل که کسوی انسان شریفی بود کسوی کسی نبود که درباره خودش اغراق رویی بکنه نه اون چه که نوشته واقعیتها رو نوشته بدیهای خودش رو هم نوشته زشتی های خودش هم نوشته،, نوشته سعی نکرده در اونجا خودش دفاع بکنه بنابراین تا امروز کسانی که بررسی کردن اغلب از این کتاب استفاد کردن ولی با روشنتون کنم که این کتاب فقط چهل سال از زندگی کسانی رو در بر میگیره یعنی از بعد به تولدش خودش نوشته تا سال 1309 و گفتیم که کسری پنجاه و پنج سال عمر کرده بنابراین 15 سال زندگی کسری خودش ننوشته و لذا لازمه که کسی که میخواد بررسی بکنه بری دنبال اون 15 سال آخری و تصادفان این پانزده سال آخری پر حیجان نوع زندگی کسری بود باید اینا رو بررسی کرده البته بعده در این مورد خدمات و اثر من گی همونطور که, که از کردم هفتاد تا بیشتر کتاب نمیشته اغلبش هم از سال 1100 بعد شروع کرده نوشتن و اکثریت این کتاب ها در مورد نقد و انتقاد انتقاد از جامعه انتقاد از دین انتقاد از روحانیت حتی انتقاد از رضا خواهیم دید خب اما به راحتی میتونیم با بر... بررسی این کتاب ها روحیه این شخص رو شخصیت این شخص رو در این مدت پونزدر سال بررسی کنیم که از دو گلد نشیه دو نوع نشیه در طول زندگیش منتشر می کرد نشیه پیمان و نشیه پرچم و اغلب مطالب و مقالات این نشیات رو هم خودش می نوشت و اغلبشون هم نقد و انتقال بود بنابراین ما میتونیم با مراجعه به زندگی کستوی رو خوب بشنفتیم یه مقدمه بود برای شنوندگان عزیز بنده از اینجا به بعد واقعی زندگی کستوی میشن برای اینکه بررسی کنیم زندگانی یک فردو ما لازم میدانیم که زندگانی کودکی او را در بررسی کنیم زیرا که روان شناسان، روان معتقدند روان معتقدن که شش سال اول زندگی یک انسان پایه شخصیتی او رو میریزه زندگی بعدی هر انسانی بر پایه این شش سال اول بنانهاده میشه بنابراین بنده ابتدا به زندگی کودکی در این زندگی کودکی یکی زندگی خانوادگیه یکی زندگی تحصیلیه و یکی زندگی اجتماعیه ما ببینیم در این دوران کودکی این مرد به صلاح در خانواده اونچه که در خانواده زندگی میکرده سنت خانواده که فرهنگ خانواده چه بوده بعد از اینکه پایه شخصیتی ایخته شد در این مدت 6 سال دوره تحصیلی تکمله ایست دوره خانوادگی، شخصیت خانوادگی اول زندگی خانوادگی رو بررسی میکنیم بعد زندگی تحصیلی کودکی رو بررسی خواهم کرد و سومین عاملی که باید بشناسیم از زندگی یک کسی، زندگی اجتماعی اون. تکرار میکنم زندگی خانوادگی، زندگی تحصیلی و زندگی اجتماعی کسری رو در خردسالی بررسی بررسیم کنیم. محیط زندگی سه دحمد نه تنها مناسب یک تربیت مفید و سازنده نبود بلکه در آن محیط ارتجاعیترین شرایط تربیتی پرورشی و تحصیلی برقرار بود علال اصول کستری میبایست چون این محیطی حل میشد و همچون بقیه یک کودکان همسین و سال خود به مسیل سنن و آداب جامعه میپیوست. و این همه توانست خلاف حرکت جامعه حرکت میکنه استثنان کسانی که از جامعه بالاتر سرشون رو میکنن و از اون فرهنگ اجتماعی سالن اجتماعی خودشون رو میکشن بیرون و خلاف این سنتها رفتار میکنن کسری یکی از این اشخاص بود و توانست از وی توانست از قهره سیاهی محله حکماباد به اوج دانش و علم و مساعد اجتماعی برسه این هم یکی از ویژگی های کسانی است که باید در آن باره بیشتری به آید متاسفانه در مورد زندگی این مرد بزرگ همانطوری که فراموش شد سالهای فراوانی از ذهن روانشناسان و روانکاوان مملکت ما نیست فراموش شده تا حال هیچ کسی اگه شده بنده خبر ندارم ممکنه شده باشه ولی من بیتدارم ولی هیچ روانشناسی تا اونجا که من میدونم هیچ روانکاوی هیچ روانپزشکی پزشکی نرفته دنبال زندگی کس ببینه که این مردی که خلاف حرکت جامعهش حرکت کرده چجوری بوده روحیش؟ و هر حال محیط خانوادگی زیربنای تربیتش در یک خانواده ملهای پای گرفت خودش میگه که اشاره میکنه در کتاب زندگانی من که چهار نیاکان وی ملا بوده مشهد بوده خب تصور بکنید ما امروز چهدهاند سال این مذهبیان رو میبینیم اینا محیط که مملکت رو به تاریکی و سلاحی و فقر برد وقتی که شوندن. شما چهار نسل یک خانواده مشتهدانی در اون خانواده مدیران اون خانواده باشن سنت ها به چه نفیه؟ با وجود این خودش میگه که خب پدر و مادرم نسبتا خوب بوده این بازه. روش بر در همون کتاب زندگانی من از سنت خانوادگی خودش صفحات فراوانی گفته از خرافاتی که در اونجا بوده صفحات فراوانی گفته و در اونجا مینویسه من چون از یک خاندان ملایی و سیدی میبودم، از پنج سالگی سر مرا تراشدند و این کارتون رنج میداشت و هر روزی که سلمانی برای تراشیدن سرم آمدی به من دشوار بودی از این رو دردادم منده است و همچنین در جای دیگری در ادامه این بیان سنتهای خانوادش می که در آن زمان‌ها پسری را که گرامی داشتندی برایش نازها کردندی از این گونه توقی سیمین به گردنش انداختندی در روزهای محرم رخت سفید حسنی یا رخت سیاه حسینی به تنش کردندی شل زرد یا حیوه به نام نظر او پخته به همسایگان و دیگران فرستادندی مرانیز از این نظرها بوده است قرص کردم با این همه خوش، خوشبختیست و خوششانسیش در اینجا بوده که پدر و مادرش انسان های روشنی بودن خودش میگه که پدر من با این همه پدر حرفه روحانیت بیزار بود پدرش مشتهد بود در حکم آباد ولی در اون وسط ها لباس اجتهاد و گذاشت کنار لباس ملاهی رو گذاشت کنار رفتی کارخانه غالبافی درست کرد و اونجا زندگیش و معیشتش رو از اونجا گذرانید و گویا گفته بود بارها گفته بود به کسدی که نان ملایی حلال نیست البته مادر وی نیست نسبتا زن روشنی بود که علا رقم بیسوادی همیشه کسدی رو برای ادامه تحصیلاتش تشویق میکرد خب این خلاصه ای از محیط زندگی است اولین قدمی که کسری به این دنیا گذاشت اولین مکانی که تربیت این بابا رو نخته گرفتش محیط خانوادگی بود دومین دو مرحله محیط تحصیلی بود در آن زمان در کتمابان اصولا مدرسهای وجود نداشت که ما بیاییم بگیم که خوب بود یا بد بود یک مکتبی بود حالا فرق مکتب و مدرسه فراغونه البته نه مدرسه دبستانه اینجا سوالم مدرسه مسئله دیگه است برق مدرسه و دبستان در اینجا که در دبستان اولوم جدید رو هم فیزیک و شیمی و تاریخ و جو. در خدمت رو ارز کنم که در اینجور مکتب ها در یه گوشه ای از مسجد یه گوشه ای از خانه یک طلبه ای یا مولایی گروهی گروه کودک هفت ساله را دور خودش جمع میکنه و با قرآن می آموزند خب کسیدی شروع تحصیلاتش رو در یک مکتب شروع کرد باز هم با، مثل زندگیش هرگز به روشنایی کشیده نشد میگه خودش میگه در همان کتابش میگه در کویی که ما نشستیم حکموار یا حکموار چون انبوه مردمش بی سواد می به سواد عرض ندادندی و مکتبی نیک در آنجا نمی بود. این مکتب که مرا سپردند ب... آخوند آن که ملا باخشلی نامیده میشد تنها قرآن خواندن را یاد دادی خود او سواد دیگری نمی‌داشت و از زبان فارسی جز اندکی نمی‌دانست. و چون دندان‌هایش افتاده بود، گفته‌هایش با دشواری فهمیده شدی. خطش رو هم جز خودش کسی خواندن نتوانستی. چیزی را که نیک توانستی و هنر او شمرده شدی، چوب زدن به دستها و پاهای بچگان بودی. مردم نیز بیش از این جز همه این خواستندی. و تربیت بچه را جز در سایه چوب خوردن ندانستندی چون پدران خود بی‌سواد بودندی جز ارج کمی به درس خواندن و با سواد شدن پسران نگذاردندی چگونگی مکتب‌ها و بعدی آنها را در تاریخ مشروطه یاد کردم خود کسری میگه در تبریز این بدترین مکتب‌ها بود و این بنابراین این هم شروع تحصیلات کسریه مفصل در این مورد در کتابش صحبت کرده این آقای بخشلی که مولایی بود عادت این جوان کوچک رو هم می میگه چون من درس زود می خوندم زود یاد می گرفتم و زود زود جواب می دادم به درس اغلب از من حسادت منو رو می کرد. خوشش نمی از من مرحله برای شناسوندن اگر محیط اجتماعی اون درس کردم سه تا محیط محیط خانوادگی، محیط تحصیلی و محیط اجتماعی. این سه‌تا شخصیت کودکی رو تعیین می‌کنه. جامعه خوشمباد یکی از بست‌ترین و ترین و سیاهترین محلات تبریز بود. خوشمباد یکی از حومه های دورافتاده تبریز است که در شمال قرب آن شهر قرار گرفته است. و حرفی ساکنان آن اغلب سبزیکایی همطور که در شروع رایزم ارز کردند که حکم مبار، همون میگن به سرزمین سرزمینی که در آنجا سبزی میکنن به طوری که اکثریت سبزی تبریز را لآقل تا اون زمانی که بنده در آنجا بودم از این محله تمنی میکنند این محله بیشتر گردشگاه مردم بود در بهار و من خوب یادمه که اغلب در سیزده نوروز مردم میرفتن اینجا برای اینکه با خاط زیبایی داشت و سرسبز و خورم بود و هواش هم نسبتا سرد نبود گرم بود نسبتا و به همین دلیل مردم میرفتن به این محله ولی سیاخترین محیطی رو با در اونجا داشتیم بنده در کودکی با خانه آدم اینجا رفتم دیدم از نزدیک در بزرگ سالی در جوانی نیز با دوستان رفتم هر موقعی که می رفتیم اونجا به ما سفارش میکردند که مواظب رفتار خود باشید عنوان مثال من خوب یادم جوانها و کودکان پسر اجازه نداشتن پیرهن آستین کوتاه بپوشن و یا بانوانی که میرفتن اونجا هجاب سرشون میکردن میدونیم که در زمان محمد بود و در این زمان خوشبختانه آزاد بودند مردم یکی آزاد بود که فجاب سرش بکنه یکی آزاد بود که نکنه ولی در این محله عملا این جبر اجتماعی اجتماعات این جبر رو تحمیل میکنن بر انسان ها عملا زنا دنباله نبودن با چادر می لفتن اینجا مساجدی بود یک چند تا مسجد بود رسوم و های عجیب غریب این شیعان رو انجام میدادن. و در زمان لازم یعنی منظورم در محرم و سفر و رمزان اینجور چیزا شهر را به هم می ریختن با شعارهاشون با دست جادشون بنابراین این هم محیط زندگی محیط اجتماعی کسری کس بوده خب با این ما الان زندگی کودکی کسوی رو بررسی کردیم تا حدودی تا آنجا که در امکانمون بود در آنجا که وقت تلویزیون هم این فرصت رو برای ما داد من حالی بعدی برای شناختن کستوی مراحل بعد از کدکیه یعنی نوجوانی و جبانی است. کستوی از همان دوران خردسالیش عقب ماندگی محیط زندگانیش رو بر نمی و به این دلیل همیشه جلوتر از محیط زندگی خیش قدم برمی داشت اهمیت تحصیل را نیز به خوبی این کودک فهمیده بود و در این راه همان گونه که گفتی مادرش نیز مشوقش بود خودش می‌نویسه در خاطراتش در شش سالگی پدرم سفر رفته بود من چون می‌دیدم کسانی از خیشان ما کتاب می‌خوانند و نامه‌هایی که از پدرم می‌رسد می‌خوانم آرزو میکردم من نیز توانستمی و چون مادرم میگفت باید به مکتب بروی و درس بخوانی تا خواندن اینها توانی خواستار شدم که مرا به مکتب گذارند و باز بلافاصله ادامه میده من از روزی که به مکتب رفتم چون خواهان و آرزومند میبودم هر درسی را تا نمیفهمیدم رها میکردم این بود توند پیش می رفتم علف بارو در یک هفته یاد گرفتم از همان ابتدای جوانی که مشکلات شخصی از قبیل فقدان پدر مسئولیت خانوادگی فقر و بیماری و نداری و تعنی همسایگان و منت دیگران برخورد کرد کی بود از طرف دیگر پلیدی ها و آلودگی های اجتماعی را نیست بر نمی تابید زورگوی مردم فریبی ملایان، قهطی های مکرر، بیماری های ناشی از آن، سود محتکران، برخی سنت های و خرافی مردم روح حساس و تقیان کسدی را آزار می‌داد. به همین دلیل کسدی در هر فرصتی به نبرد آلودگی ها و این راهی بود که او در طول زندگانی بعدیش با شهامت و شجاعت ادامه داد و لحظه از پای ننشست در مبارزات کسلی فریاد کسلی به سر افعادی که هرچقدر چقدر مقام طرف بالاتر بود هرچقدر چقدر مقام فاسد بالاتر بود فریاد کسلی بلندتر میشد. از هیچ چیز عبام و ترس و وحشت نداشت حرفشو همیشه می گفت. او در دوازده سالگی پدرش رو از دست داد و در این تاریخ هنوز درسه که ابتدایش کلاس مکتبش رو تمام نکرده سال بعد مجبور شد پس از این که این کلاسش رو تمام کرد از مدرسه دست بکشد مدتی سه سال درس نخوند ابتدا موسسه مؤسسه بافی پدرش رو اداره کرد مدتی بعد در یک کارخانه قالی بافی مدیریت مدیریت آن را به اخده گرفت بعد. ولی چون این پیش با طبعه کسری به سازگار نبود آشنا نبود در اولین فرصت یک سال این طول کشید خود را از خیلی را ها کرد کسری و از سه سالی که زندگیش رو در این دوتا قالی بافی گذاروند به اصرار مادرش رفت ادامه درست رفت ادامه درست. مدرسه صادقیه یا طالبیه بود خوبی آدم نیست من خودم دیده بودم اونجا رو که مدرسه منلایی بود در این مدرسه وقتی یکی وارد می شود. بعد از اون برد منلا بیرون و به کمان من این سه سالی که کسری در این مدرسه درس مجتمون لایان برایش باز شد و کسری اینا رو شناخت بدین ترتیب هر قدمی که کسری برمیدارد، محیط آمادش می تا فریادش رو بر سر این روحانیان روحانیان دورنگ خواهیم رسید روحانیان اون لایان فرید کار خود کسوی اعلن انزجارش از ملایان را چونن میگو میگه که ملا زادگانی که در سه سالی که اونجا بوده در کتابش بیان میکنه میگه ملا زادگانی که به مدرسه آمدندی از همان نخوست مشق مرید نگهداری کردندی بارها دیده بودیم به نزد ما آمدندی و نشستندی و به جای درس گفتگو از آن کردی که فلان حاجی به من امروز سلام و رای داد و بهمان اعیان که مرید من شده مرا دیشب به مهمانی خوانده بود در آن روزها یک سالوزگاری گفتی در میان ملایان میبیشه جوانان ایشان رواج یافته بود بدینسان سان که امامه را هرچه شلو ول میگردانیدندی شال را به کمر چونان بستندی که در راه رفتر باز شده و سرش به زمین کشیدی تو را چونان پوشیدندی که جای پاشنش به نیمه پا آمدی اینها برای آن بودی که گفته شود آقا لاغید است از خود ناآگاه هست من لازادگان ورزش این سالوز کاری ها را کردم ولی من به یک بار آخشیج ها را میکردم آخشیج در بیان کسری یعنی زد من به یک بار زد این سنت های بد رو انجام میدادم و از هرچی و از هر که رنگ روی کاری توانستی داشت دور, دور دوری میکردم چون این مکر خود امو تصویر تصویر موید با طبع بیجی‌های های که صفی صادق جوان سازگار نبود لذا عملا به سنت حکمی پرداخت و, و ظاهر و باطن خیش رو از ناهنجاریهای آن محیط که محیط زندگی حرفی و اجتماعیش نیز بود به و این خود از دیده آلمان دید گناه بزرگی شد کسری اونجا که میره طبق ملایان دیگر رفتار رو میکنه ما میدونیم در هر محیطی سنتی هست ارز کردن من سنت جامعه تحمیل میشه به فرد ولی این شخصیت این فرد این جوان حالا وقتی میره یک چونین محیط رو میبینه نفرت پیدا میکنه و عمدن عملا شروع میکنه بر خلاف این محیط رفتار کردن باز من استناد می‌کنم به حرف خودش میگه من خود به شیوه ملایان رفتار نمیکردم چونان که گفتم امامی سطرگ شلوول به سر نمیگذاردم کفش زرد یا سبز به پا شلوار سفید نمی پوشیدم. لیش فرو نمی هلیدم. کفش های پاشن بلند و بافت ماشین به پا می کردم. شال کمرم را سفت دین بستم. اینها به جای خود که چون چشم هایم ناتوان گردیده بود با دستور پزشک عینک به چشم می زدم. و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی معابی من شمرده می میشد. اینها با ادالت که شرط پیش و ملایی می بود نمی ساخت تا آنجا که می توانست نزدیکان و خودش رو هم از محیط ملایی به دور می کرد دو تا برادری که کچکتر از خودش بود در در زندگی داشت این دو تا برادر رو به جایی که به محیط ملایی بفرسته به دبستان فرستاد. در اون تاریخ به غیر از مدرسه رشکیه مدرسه دیگری به نام نجات باز شده بود که مدرسه خیلی گویا معتبری بوده در اون تاریخ و اسمش معروفه در بین تاریخ مدارس در تبریز کسروی دو تا, دو تا برادر خودش رو با مناسب به این مدرسه میفرستاده. از طرف دیگر کسلی علاقه فراوانی به خوندن علوم جدید، علوم مدرن داشته و به همین دلیل بدون رعایت محیط زندگی سنتی و سنگین و سیاه و فریبکار و خرافاتی ملایان با همین کتاب‌های مدرن و کتاب‌های علمی جدید به سر کارش می‌رفت، در مسجد می‌نشست به جای اینکه تصویید بچرخوام به جای اینکه ریشش رو مالش بدهد کتاب میخون اونم چه کتابی کتاب مدرن کتاب های خارجی خب این گویا در چخاررشوب سنت ملایان حتی گناه داره حد شریه هم نیز بین میبن... میبندند آنطوری که کسایی اینجا توجه فرمید میگه روزی یکی از ملازادگان میخواست امامه به سرگذارد و برای این کار بزمی برپاگردانیده انگجی را انگجی یکی از مرشدان معروف تبریز بود انگجی را با دیگر ملایان خوانده بود من نیز در کوچه گرفته با خواهش بسیار همراه برد تون رفتیم و نشستیم و انگجی و دیگران آمدند و نشستند و گفتگو آغاز گردید یکی از طلبه ها رو به انگجی گردانید و چونین پرسید آقا کسی هست که درس فرنگی میخواند آن روز دیدم کتابش را به مسجد آورده و میخواند درباره او تکلیف چیست؟ توجه بفرمایید این نظر ملا... نه نظر فقط انگجی اینجا نیست نظر همین آقایون هم هست همهشون مگه میخواست مدارس دانشکده علوم انسانی رو تعطیل بکنه بی خود نبود این سنتشونه این در عقیده شونه طبیعی است کسی که درس میخونه به لالایی های خرافی اینو تندر نمیده کسی طبیعی است کسی که صاحب دانش از اینا طبعیت نمی کنه. از مرسیدانشون تقلید نمی کنه بنابراین اینا دشمن بودن به هر حال ادامه میدم اون مولای دیگه پرسیده آه کسی هست که درس فرنگی میخواند امروز دیدم کتابش را به مسجد آورده بود و میخوان درباره او اون تکلیف چیست خواستش از اون کس من میدودم زیرا چند روز پیش یک کتاب لانگاج فرانسه در دستم به مسجد میزا رفته بودم و آن طلبه دیده بود انگجی گفت به او باید حد زد توجه بفرمایید این پیام یک مشتهده فتوه های یک مشتهده به او باید حد زد آن طلبه و برخی از ملایان روی من نگاهی کردند، ولی من به،, به خود نگرفته به خاموشی گراییدم یکی دیگر از اوصاف کسروی که با عقاید ملایان سازگار نبود آزادی خواهی و مشروط طلبی وی بود کس اگر کتاب دو جل کتاب تاریخ 18 سالی آذربایجان و تاریخ مشروطیت ایران را نوشته شما اگر به یک چیزی علاقه نداشته باشید در اون باره نمیتوانید قلم به چرخانید علتش این بود که کس زدی آشق مشروطیت بود مشروط خواهی او از سوانی شروع شد که مردم تبریز نیست به دنبال مبارزات مشروط طلبان تهران در سال 1285 پیام کردند و با در نشریات محلی و گفتارها در میادین و مساجد مساجد شهر مردم را به شور و هیجان واداشتن در همین دوران بود که کس شانس در ساله برای اولین بار با کلمه مشروط آشنا می شود و ضمن شرکت در اجتماعات و سخنرانی‌ها که مفهوم آن باشه پی برده بود باز می نویسد خودش از حکمبار می آمدم در ویجوی ویجوی محله ایست همسایه محله حکمباد از حکمبار می آمدم در ویجوی نام مشروطیت شنیدم نخست بار بود که به گوشم می خورد و پیداست که معنایش نمی دانستم چون مردم دسته به دسته به کنسولگری می رفتن من نیز پیروی نمودم در آنجا کسانی را دیدم که به مردم گفتار میرانند و مشروطه را معنا میدن من اینها را پسندیدم و به مشروط دل بستم از نویدهایی که در پیشرفت پیشرفت توده و آینده روشن کشور داده میشد بسیار شادمان گردیدم چون جوش و جنبش مردم را میدیدم از شادی گردن میکشیدم و میبالیدم و خدا را سپاس میگذاردم <تصفيق> لیکن محیط سیاه آن روز حکماوار مشروط خواهی کستدی را نمیتابید و متشرعان محلی این رفتار سیدحمل جوان را با شک و تردید به ویژه یکی از ملایان خانواده که معلمش نیز شده بود زبان به ملامتش میگو و روزنامه خواندن و انجمن رفتن کسوی کس رو مورد سرزنش قرار می دهد با خانواده صحبت می کند، با بزرگان خانواده صحبت می در فیکر آنان انتقاد می کند از کسوی کس که این آدم این جوان روزنامه می خاند. این جوان انجمن می روید. خب دو سالی بعد مجلس شورای ملی به وسیله قضاقان حامی محمد علی گنباران شد روز روز دوشنبه سوم تیر ماه 1887 بود چند هفته ای طول نکشید که تبریز قهرمان به خاطر بازگردن دن مشروطیت قبل کرد و به, و به نبرد مسلحانه بر علیه قوای دولتی پرداخت در این سال سه احمد جوان 18 ساله داشت در این سال سی جوان هیچده سال داشت. او به شدت تحت تاثیر مبارزان و مجاهدان تبریزی قرار گرفت و آتش درونش در حمایت از مشروطیت صد جندان شد. خود در این باره می نویسد. چون کار مشروط خواهان پس از بدی رو به نیکی گذارده و در سایه مردانگی های ستارخان و دیگران روز به روز مشروط خواهی به نیرو می افسود این آگاهی‌ها که به من رسیدی مرا بسیار خوشنود گردانیدی میدانیم که در تبریض ده ماه جنگ مسلحانه شد بر علیه حکومت مرکزی و بالاخره با ورود قوای روسی همون قوایی که امروز حامه حکومت ماست با ورود قوای روسی این جدال تبریزی ها نیست خود به خود به پایان رسید ولی خوشبختانه مشروطیت رو گرفته بودم بقیه در فرصت دیگه